السلام علیک یا بنت موسى بن جعفر و رحمت الله و برکاتو و السلام علیکم و رحمت الله تا انسان زنده است و حوش و حواس داره نمازهای واجب خودش رو باید به جا بیاره و تا زمانی که زنده است و توان دارد باید روزههای واجب رو خودش به جا بیاره اما اگر از دنیا رفت و نماز یا روزه از او قضا شده بود و باقی منده بود افتخاری نصیب پسر بزرگ شده که این نماز روزه ها رو به جا میاره اما پسر بزرگ کیست؟ پسر بزرگ اون پسری است که زمان مرگ پدر یا مادر اولین پسر محسوب میشه بنابراین اگر اولین پسر یا دومی یا هر دو قبل از مرگ پدر از دنیا رفته باشن اون بعدی که الان زنده است و از دیگران سنش بیشتره اون میشه پسر بزرگ اگر تک پسر باشد بر حده اوست اما اونی که واجب است فقط نماز روزه است بقیه واجبات بر حده پسر بزرگ نیست حتی کفاره روزه طرف روزه نگرفته، قضا شده است، پسر بزرگ به جا میاره، اما اگر کفاره روزه واجب شده باشد از اموالش باید بپردازند. بر عهده پسر بزرگ نیست. واجبات دیگه هم مثل حج و اینها هم همچنین. مسئله سوم اینکه اون نماز روزه هایی که اصالتا بر خودش واجب بوده، پسر بزرگ باید قضا کند. نه اونایی که به واسطه مثلا همین آقا که از دنیا رفته پدرش نمازای نخونده بر این پسر واجب بوده اینم به جان نیورده حالا از دنیا رفته آیا این نمازهای پدر بزرگ یا مادر بزرگ بر ایشون واجبه دیگه فقط پدر خودش مادر خودش و همچنین یه وقت نماز استیجاری قبول کرده بوده، روزه استیجاری قبول کرده بوده، به جان نیورده، این دیگه بر پسر بزرگ واجب نیست. پسر بزرگ هم لازم نیست حتما خودش به جا بیاره، میتونه به دیگران بسپاره. حالا یا مثلا مبلغی رو بده دیگران به جا بیارن، یا مثلا بستگان خودشون دافتلبانه تقسیم کنن و به جا بیارن، اشکال نداره، از گردن او هم ساقط میشه. مسئله پنجم این که اگر خود پسر بزرگ نمیتونه به جا بیاره خودش الان مثلا هفتاد سالشه ناتوانم هست مریض هست باباش از دنیا رفته اون نماز قضا داره این یا ببخشید روزه قضا داره این اگر نمیتونه به جا بیاره بر عهده او نیست اما اگر توان مالی داشته باشه یا کسی دیگری تبرعا بدون مزد قبول کنه به دیگری بسپاره به جا بیاره اگر شخص وصیت داره نسبت به نماز روزش از دنیا رفته از سلس مالش وصیت کرده که بدید برام به جا بیارن در صورتی که اون وصیتش کفایت کنه طبق وصیت عمل میشه دیگه بر پسر بزرگ واجب نیست اگر شخص از دنیا بره و پسر بزرگ نداشته باشه بر دیگران واجب نیست اما این نکته قابل توجه است هرچند ما وظیفه داریم نمازا رو بخونیم روزار رو بگیریم اما اگر سنمون به حدی رسید یا وضعیت جسممون به حدی رسید که دیگه ناامیدیم که نمیتونیم اینا رو به جا بیاریم بر ما واجب است اگه مطمئن نیم پسر بزرگ به جا میاره او اطلاع بدیم وگرنه باید وصیت کنیم از اموال خودمون بدن به جا بیارن اگر پسر بزرگ واجب رو انجام ندهد بر عهده دیگران نیست ولی اگر دیگران بیان قبول کنن به جا بیارن کفایت میکنه اشکالی نداره بعضیان میگن خب بابای ما نماز غذا داشته خب از سلسش بدیم به جا بیارن از سلس اموالش بدون اجازه سایر ورثه نمیشه از سلس اموالش داد پسر بزرگ باید به جا بیاره یا از سهم خودش بده به جا بیارن اگر میت وسیتی، نداشته باشد تکلیف این هست اللهم ادخل على اهل القبور سرور نصار ارواح انبیا اولیا شهده انبات وحدیه به پیشگاه فاطمه معصومه سلام الله علیه سلوات